سخنرانی دکتر محمد اصدی گرمارودی موضوع سخنرانی تذکیه نفس با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیه مسلام جلسه پنجم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام علی و نبینا محمد و علی آله تیبین تاهرین المعصومین لا سی ما بقیت الله فی الارزین اللهم انت السلام و منك السلام و لکه السلام و علی السلام سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایوها النبی و رحمت الله و برکت السلام علی الامت الحادین المهدی السلام علی جمیع انبیاء الله و رسوله و ملائکته السلام علینا و علی عباد الله الصالحی السلام علی علی امیر المؤمنین السلام علی صدیغت الشهیده السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین السلام على علی بن الحسین زین العابدین السلام على محمد علی محمد بن علي باغر علم النبیین السلام علی جعفر بن محمد صادق السلام علی موسی بن جعفر کازم السلام على علي بن موسى السلام على محمد بن علي الجباد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجت ابن الحسن القائم سلام که يا مولاي یا اول مظلوم قصب حقه یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا الله و قدمنا که بین ید حاجاتنا یا وجیهن اندالله اشفلنا الله قال الله تعالى في كتابه و نفس و ما سواها فعلحمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها ميدانم شب شهادت امیر المؤمنين شب 21 رمزان دلسوختگان و عاشقان مکتب امیرالمؤمنین خیلی آمادگی قال و مقال ندارند حق هم همین است شب حال هست شب توسل است شب انابه و توبه و اشک و عشق بازی و آشتی با خدا و امیر و آل علیست. اما خود اون بزرگواران به ما آموخته و سفارش کرده که بکوشیم مقدمه آن حال قال هم داشته باشیم من اجازه میخوام با توجه به بحثی که این چند شب داشتیم و به خصوص شب 19 در ارتباط با آیات خونده شده و تزکیه نفس بحث رو امشب به محبت علی غفت بدم ولی با یک مقدمه ای که کمی طول میکشه عرض کردم خداوند چون به ما انسانها نفس داده است مسئله تزکیه نفس هم برای ما انسانها مطرح است تذکیه <تصفح> نفس با تقویت نفس فرق میکند برخی مرتازان که در مسیر حق قرار ندارند در اثر ریاضت و برخی کارهای شاق نفس را تقویت می و در اثر اون تقویت آثاری بروز می کند آنانی که توجه به فرق تذکیه نفس با تقویت نفس ندارن تصور میکنن پس اون طریق حق است زیرا اونها هم آثار خارق العاده ای از خودشون بروز دادن چه است بین تذکیه نفس و تقویت نفس شما کودکی که از مادر متولد میشود اگر در جهت رشد و نمو جسمانی بخواهی در نظر بگیری نمو صحیح و رشد اصولی برای این کودک این است که همه اندام او متناسب رشد کند و بالا بیاید اگر کودک یک روزه ما ده ساله شد یا به سن پنجاه رسید دست و پا و چشم و گوش و همه اندام متناسب با هم رشد لازمش را کرد این نمو سالم است اما اگر دست این کودک در سن پنجاه سالگی به اندازه دست یک پنجاه ساله شد ولی پایش در حد یک کودک ده روزه باقی ماند این ناقص است اگر چشم و گوش رشد کرد دست و پا رشد نکرد این ناقص است در بعد نفسانی هم همینطور است انسان کامل کسی است که تذكیهٔ نفس دارد یعنی تذكیه در اصل لغت به معنی رشد و نمو رشد و نمو و نفس یعنی تمام قوایی را که خدا در نفس ما قرار داده است متناسب و هماهنگ هر یک در جای خود بالا آید و رشد کند یکی از اسراری که همه اونا آنهایی که در خصوص امیرالمؤمنین مطالعه شگفت شگفت‌زده‌اند و میگویند علی جامعه ازداد است منظور از جامعه ازداد چیست مگر اغلا نمیگویند اجتماع زدین محال است نمی شود دو زد و دو نقیز با هم اجتماع کنند. این بحث اجتماع زدین جمع ازداد در خصوص امیر المؤمنین علیه السلام به همین بحث تذکیه نفس مربوط می شود یعنی نفس ما یک بعدش ارتباط با پروردگار از نظر عبادت وقتی در علی این بعد رشد می کند از او آبتر سراغ ندارید اما آیا در همین نفس استعداد در راه خدا شمشیر زدن در راه خدا فعالیت داشتن در راه خدا خشم گرفتن به اونجا میرسد که وقتی علی بناست خشم بگیرد از علی خشم گینتر شما سراغ ندارید اما همین نفس استعدادی دارد عاطفه، مرحمت، لطف و ایثار و شفقت و دلسوزی شما در دلسوزی هم از علی بالاتر سراغ ندارید همان گونه که این جهان یک تجلی از خداست و چون تجلی خداست جهان چون چشم و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوست وجود ما کتاب تکوینی حضرت حق است که رفرموده امیر المؤمنین علیه السلام از هز اما انک جرمون و وفی کن تول آلم اکبرو و انتل کتاب المبین و لذی تون کتاب تکوینی الهی هستی که هر سطرش هر کلمش هر نقطش در جای مناسب خودش قرار گرفته است تذکیه نفس یعنی رشد به جای هر یک از این قوا وگر نه در تقویت نفس من مثال جسمانی باز بزنم اگر بنده در بعد خاص مثلا وزن آمدم نیروی بدنیم را در این بازوان و قدرت حرکت این وزنه کارآزمایی دارم تمرین دارم قدرت حرکت دادن وزنه دارم ولی معده من بیمار است یا فشار خون دارم یا ضعف در یک جهت دیگر از اندام وجودی دارم این تقویت یک بعد است تضعیف سایر اندام اگر همه اندام با هم رشد کند نفس اون سرمایه بزرگ الهی است که به من و شما داده است و تزکیه نفس یعنی رشد به جای همه ابعاد وجود به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران علی آینه اسرار ایزد علی یک تادر دریای سرمد به گاه خشم چون شیر شرربار به گاه لطف چون ابر گهربار، جای لطف از علی مهربانتر در عالم پیدا نمی کنی جای خشم از علی شما غبیتر در اظهار قهر پیدا نمی کنی یعنی عاد نفسانی در این انسان کامل به صورت هماهنگ رشد حال ما به عنوان پیروان علی با عنوان بندگان خدا که نفس به ما داده است و می خواهیم تذکیه نفس کنیم بزرگترین، ترین بعد نفس که از او تراوش می کند بقیه امور پریشب استدلال کردم اشاره کردم آیات و روایات مربوطه را هم خوندم که قلب است اگر قلب را ما سالم کردیم بقیه عوامل سلامتی ایجاد می شود و اگر قلب بیمار شد بقیه عوامل بیماری هم ایجاد می کردد. از زبان امیر المؤمنین علیه السلام نهج البلاغه خطبه سد و هفتاد و چش لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ایمان یک عبد مستقیم نمی شود در مصرات حق قرار نمی گیرد حتی تا اینکه قلبش استقامت راستی و استواری بیابد اجازه بدید یک توضیح عرض کنم که مقدمه ورود به محبت علی که محبت خداست در این شب شوم هر چند این بحث رو تا شب جمعه ان الله ادامه باید بدیم تا بحث جا بیفته ببینید این عالم عالمی است که موجودات یک جنبه فاعلی دارند یک جنبه انفعالی الان در عالم جماد شما در نظر بگیرید اگر این آب را که یک شیء بی جان است من بریزم زمینی که مکانی که سچی که این آب روی او ریخته می شود اون پذیرش رطوبت، تأثیری که این آب در او ایجاد می کند آب می شود فائل اون شیعی که تأثیر را پذیرفت می شود منفعل انفعالی حالت پذیرشی ما در انفعال و تأثیر در همین عالم جمادات انفعالات گوناگون سراغ داریم مثلا اگر سطح این کتاب یا جزوه باشد شما یک تصویر را بو عنوان یک عامل فاعلی بتابانید در اینجا نقش کندانی نمیبندد ولی اگر سطح آب باشد یا آینه باشد وقتی این تصویر رو تابوندی در سطح آب این نقش منعکس می شود پس آب منفعل است نسبت به پذیرش این تصویر آینه منفعل است نسبت به انعکاف این تصویر اما این شیء جمادی زمخت تیره منفعل نمی شود از جمله موجودات عالم که قدرت انفعالیش خیلی عالی و در سطح بالاست دل من و شماست اما همانطوری که این آب اگر تصویر زیبا در او تابندی تصویر زیبا را به شما نشون میدهد، تصویر زشت و نا هنگ رو تصویر زشت رو منعکس می کند قلب را به چه می دهید؟ که بر اساس او قلب منفعل شود این که امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه سد و هفتاد و شش <تصفيق> می لا یستقیم ایمان و عبدن ایمان هیچ منده ای مستقیم و استوار و پابر جا و مستقر رو در سرات حد نیست حتی مگر آن که یستقیم قلبو دلش مستقیم باشه در کتاب توحف العقول از امام باغر علیه السلام بخش کلمات قصار امام باغیر، حدیث شماره سی و نه ان للهه عاقوبات فلقلوب و ابدان، ان للاح عاقوبات، فلقلوب وال ابدان، خداوند یک اثراتی، یک خاصیتها و یک مجازاتی برای قلب و برای بدن شما قرار داده است زن کن معیشه گاهی گرفتاری های روزی براتون درست میکنه اشاره به آیه قرآن و من یعش انذکر رحمان نغیز لهو شیطانن فخوه لهو غرین و لهو معیشتن زن کا مشکلات اقتصادی گاهی پیدا میشه و وحنون تل عبادت و سستی در عبادت یک سلسله اعمال سرش چی میاد عقوبتش چیه مشکلات اقتصادی پیدا می مشکلات سست شدن در عبادت پیدا میکنیم و ما زوره به عبدن به عقوبتن اعظمو من قصبت القلب هیچ اثر سوئی هیچ ای هیچ مجازاتی و هیچ مکافاتی را خداون برای عبدی قرار نداده است بزرگتر و خطرناکتر از این که دلش قصیبش که قصابت قلب و پریشان توضیح داده از امیر علیه السلام در کلمات قصار نحج البلاقه بخوانم. ان من البلا، الْفَاقَه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض قلب ام من البلا از دید علی علیه السلام همانا از بلاها گرفتاریها ها مشکلات فقر اقتصادی است و اشد من الفاقه سختتر تر مشکل زاتر از فقر اقتصادی مرض بدن است و اشدومن مرز البدن سختتر و خطرناکتر از بیماری جسمانی مرز القلب یعنی دل حالت انفعالیش را یا از دست بدهد یا اگر دارد از بدها منفعل شود از خوبها منفعل نگردد بزرگی خدایش بیامرزد مثالی دارد در اینجا بسیار زیبا میگه شما یک حوز آب رو در نظر بگیرید یک زمان انقدر گلآلود است انقدر در این آب حوز لجن وجود داره شما نمیتوانید تصویر یک منظره را در این آب لجن آلود بتوانید. دلگاهی انقدر تاریکه علی در او جا نمیگیرد امام زمان در او جا نمی گیرد. خدا در این دل قرار نمیگیرد، این دل شهوت رو میخواهد، این دل از بدی حال لذت میبرد، لذا در هم نشینی و مجالست وقتی با کسانی مینشیند که از زشتی ها تباهی ها شکم شهوت دنیا مقام پول مسائل پس دنیاوی می گوید. آماده است سرحال است خوشحال است ولذت میبرد اما وقتی از کمال و فضیلت و انسانیت و معنویت و تعالی و علی و آل علی و عشق به اولیای الهی مطرح میکنید دهندرش میگیره خمیازه میکشه خسته میشود. چرا؟ این دل حالت انفعالیشو از دست داده است باید اینجا به فکر معالجه این دل باشیم اگر از نظر بدنی به فرموده امیرالمؤمنین علیه و السلام و سلام مرض بدن از بلاهاست یک غذای سالم و گوارا را اگر شما به معده دادید معده باید بپذیرد حزم کند اساره غذایی را جذب کند به بقیه اندامها بده ولی وقتی این غذای سالم و گوارا وارد معده من می شود استفراغ میکنم برمیگردانم چرا من دیمارم معده من مریضه نمیتونه این غذای سالم رو الان که شمای سالم میپذیرید و اثاره این غذا و اون موادش را به بدن میرسانید من برسانم چرا سلمان در پای منبر علی ابوذر در کلاس درس علی قویت قرنی در کنار علی قمبر در قرام در کنار علی به اونجا میرسد که بزرگان در طول تاریخ تمام افتخارشون اینه که قمبر غلام علی گرت کپ پاشو به سر و روی ما بریزد ما ببالیم این دل سالم است و منفعل می شود اما این دل لجن زده گاهی اون قدر داره شمایی که تصویر دستتونه میخوای خوایی بتابونی الان میخوای فیلمی رو به یه جای به تابونی جمعیت ببینه میگه روی این پرده نمیشه این سیاهه این تاریکه این شرایط انکاف نداره یه وایت قرار بدید یه شرایطی بگذارید تا من به اونجا به تابانم خدا تمام کمالات ممکن این عالم را در اختیار ولیش قرار داده که سید الاولیاء امیر المؤمنین علیه السلام و خاتم الاولیاء امام عبد علیه السلام در شب قدر که بناس مقدر شود و به به دل منو شما نگاه میکنه کدوم دل؟ وای بر اون وقتی که علی به خدا بگوید امشب تنزل الملائکت و روح روح الامین سردسته ی فرشتگان وقتی نیاز خدمت امام زمان علیه السلام برکت از آسمان میاره از عالم ملکوت ارزش ها رو میاره میگه میخوام بتابانم اما وقتی نگاه به من میکنه میگه این دلونقدر سیاس انقدر لجن گرفتدش انقدر آلودگی داره ای اصلا آمادگی نداره من به این دل به تابونم نگاه میکنه دلها را دل شناسن دل یابن دل برن دل برن دلو میبرن دلو میخوان لطف شیر و انگبین زان دل است هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است پس بود دل جوهر و آلم عرض سایه دل کی بود دل را قرض بله اون وقت اون میگه این دلز علی اگر بگیرم چه کنم بی علی اگر بمیرم چه کنم سردا که کسی را به کسی کاری نیست دامان علی اگر نگیرم چه کنم اما دلی که تو این دنیا نشون بده داره میگیره یا نه دلی که در این دنیا مشخص بکنه اجازه بدید من حالا میخواستم مقدمه بکنم تا بیر آیه برستم شد مقدر این شد من چند آیه بخونم برگردم هنوز باز باید از هم بخون در سوره قاف آیات سی سی یک سی دو سی, و سی, و سی, و سی من سریع اینجا بحث میکنم امشب فرصت مفصل واردی این جزئیات بشیم نیست اما تقاضا دارم از کسانی که خودشون حال تحقیق و پیگیری دارن بعد به این آیات مراجعه کن سوره قاف سوره پنجاه هم قرآن کریم آیه سی یومن نقول لجهنمه حلم تلعته و تقول حلمن مزید فردای قیامت خدا میگه. قرآنه روزی که به جهنم میگین آیا سیر شدی؟ بسه این همه گناهکار ریخدیم تود حالا کافی پر شد و تقوله حلم من مزید میگه نه بازم بدید هنوز جهنم جا داره و ازل فل جنت للمتقین غیر بعید اما بهش را تزیین کردیم آماده کردیم مهیا کردیم <تصفح> برای متقین که خیلی هم دور نیست هاذا ما عدونه این همون نیست که وعده داده شده اما اینجا به بعدو دقت کنی اون جنت ببخشید جهنم حلم من مزید میگه خونهکارها رو توش فرک حالا بهشت رو حاضامات و عدون اینه که وعده دادیم برای متقین لکل عوابن حفیظ لکل عوابن حفیظ برای اون کسانی که برگشتن توبه کردن مراجعت کردن انابه داشتن و این برگشتشون رو محافظت کردن و نگه داشتن من خشی رحمان بالغیب اینا کسانی هستند که از خداوند رحمان در پنهانی ها خشیت داشتند نه این که در آشکار ترسیدن در پنهانی در تنهایی در مخصیگاه ها اونجا خوف خدا براشون مطرح بود و جا به قلب منیب این نکته یادتون باشه و جا به قلب منیب انابه یعنی چی در لغت بازگشتن با اشک و آه و گریه میگه انابه میکنه مثلا فرض کنید بنده کسی رو آزردم الان میخوام به سوش برگردم میام گردنی گردنیکجمی کنم چشمم داره اشک میریزه میگم آقا بنده برگشتم به سوی شما یک زمان این برگشتن لفظی است این برگشتن ظاهری است اما اون زمانی که این برگشتن قلبی باشه از دل انابه دارم و جاعد قلبن با قلب انابه دار داره به سوی خدا برمیگرده اینا اونایین یعنی که ازل فتل جنه بهشت براشون آماده شده است. پس برمیگرده به آمادگی قلب حالا میگه این سراغ قلب خب این قلب یک زمان مثل آب گلالود لجن زده اما یک زمان لجن تهنشین شده روش صافه یه ذره کسی پاشو بذاره توی استخر دوباره لجنا میاد رو گاهی بنده با شب غرب یک کمی گریه یک کمی ناله ظاهر این استخر قلب من یک صافی پیدا کرد اما لجنا هنوز زدوده نشده تهش منده لذا خیلی وقتا جوونای عزیز میان میگن فلانی تو جلسه این حال من خوبه تو ماه رمضان حال من خوبه تو دهه محرم حالمون خوبه اما بعد از دهه محرم تو خیابون یه نگاه ما رو میبره تو محل کارمون یه همکار رشوه میگیره ما تحریک میشیم رشوه رو میگیریم یه هم کلاسی تو دانشکده به دختر خانم میگه آقای ارتجا چیه حجاب و چادر و وابستگیه به دین و فلانو من دیگه عوض میشم چیه امشب این نقطه رو میخوام بگم دل اگه به علی داده شدی لجنا رو میبره چون وقتی علی رفت تو دل اینا رو شد سشون اما علی تو دل رفتن چگونه حالا عرض می ما کاری بکنیم دلمون را از کل لجن خالی کنیم نه اینکه این لجن تهشمون وقتی لجن تهشمون یک شیطونی پاتوش گذاشت دوباره لجن ها را رو می کند این باید از درون به این و کنار بزنی اصول کافی جلد دو صفحه دویست و دو حدیث شماره شنزده عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق اِنَّ الرَّجُلَة یُزْنِ بُوزْزَنْبَه وقتی یک فرد گناهی را مرتکب می شود سیوح رمو اللیل از نماز شب محروم می شود وقتی گناه می کند ببینی دل یک حالت انفعالی باید داشته باشه منفعل بشه مثل چشم که باید منفعل بشه حالا اگر شما جلوه چشم منو پرده کشیدی به اقتضای زخامت پرده ای که جلوه چشم من قرار گرفته چیزی را که از اون طرف میخواید به من بنمایانی رؤیتش برای من چه میشه؟ مشکله. گناه در دل به فرموده امام صادق علیه السلام این اثر را ایجاد می کند که توفیق نماز شب از او سلب می شود لذا اینجا باید به این نکته توجه کرد من چه کنم دلم آمادگی برای ارزش رو بیشتر پیدا کنه فَإِنَّلْ فا وَإِنَّلْ عَمَلَصَيِّ اصرع و فی صاحبهی من از سکینه لحم امام صادق می گناه کاری که با دل میکند از اثری که کارد روی گوشت میگذارد بیشتره. کارد وقتی گذشتی روی گوشت میبره. اگر برخی از روانپزشکان اینو به ما گفتند میگن جنبه قلب ظاهری بطن دهلیز. شما در اثر یک عامل هیشو که میشید این عینا تعبیر یک پزشک بود که به بنده میگفت می گفت یک سیبو در نظر بگیری یک کارد ولو آروم آروم شما میزنی این ادامه بیابد، این ضربات کارد روی سیب کم کم سیب رو گاچ میکنه گناه روی قلب همینجوره همونطوری که شک روی قلب آروم آروم میاد یه رفت دوچاره مشکلات قلبی میشیم به معنی قلب بسن و دهلیز آلو دیگی هم که میاد همینطوره پس باید چه بکنیم؟ جلوه وارد شدن اینا رو برای قلب بگیریم یعنی به این تغییر نگاه کنید حالا میخوام نزدیک بشم یک استخری داریم آب گلالود لجنزده توشه یک س... کانالی کشیده این آب لجنزده گلالود داریم میاره میریده تو استخر من یه لیوان برداشتم کنار استخر نشستم لیوان لیوان آب لجنالود میگیرم اوور میریزم. یه عاقل به من چی میگه؟ ع من باز داره پر میشه کانال رو ببند. این کانال رو قطع کن به بهجاش یه کانال دیگه وزن کن. اون کانال دیگر رو که وصل کردی اون کانال وقتی اومد آب صاف زلال رو که آورد با فشار قوی این آب رو میرزه بیرون مثل شیلنگ رو که با فشار قوی میگیریدی موزایی کار رو سشو بده لجنای لای رو ببره تو استخی لجلا بشوره ببره. آیا اونی که خدا قرار داده برای دلما اونو میگه محبت حالا از اینجا با این مقدمات دشتبه نزدیک شدم محبت چیه؟ از رابطه بین محب و محبوب محب تا محبوب نباشه محب بنا نداره رابطه بین محب و محبوب رو میگن محبت یا حب خب یعنی دل دستگی خوب دیگه اتفرماییم؟ حب یعنی دل دستگی دل بسته شود یک زمان بستگی بستگی جسدانی است دست من و با دست کسی بگذاریم تو همدیگه این ارتباط دستی است چه دقیقی دارد که قلبهای ما به با همدیگه بابسته شده باشه اما یک زمان دل بسته می شود دقیقی دل بسته شد چشم، گوش، دست، پا همه اندام متوجه اون جهت می شه که بسته شده است اینو بهش میگن گن خب اجازه بدید میدونم شب قدره خیلی حوصله بحث های تحلیلی نیست اما من میخوام یه مقدار دقیق تر اگر میگیم علی نهره میکشیم. اگر میگیم محبت علی ببینید با چه پایه هایی این دلی که دو سه شب دارم بحث میکنم باید جلا پیدا کنه باید لجنها رو ببره باید منفعل بشه نسبت به ارزش ها اینجا دقت بفرمایید محبت دا مدار ادراک است درک نسبت به درک ما محبت ایجاد میشه یعنی چی؟ با این مثال دقت بفرمایید بنده میام از یک کوچه عبور میکنم یه سنگی یه چوبی یک <تصفح> پارچی رو میبینم نه در من ملایمت ذاتی نسبت به این درست میشه نه منافرت یعنی نمیبینم همچین در درونم خوشم میاد نم خیلی نسبت به این تنفر و اکرا دارم اینجا بی تفاوتم نه محبت دارم نه بغس دو میام از جای رد بشم به شدت گرسنم. بوی غذای مطبوعی به مشامم میرسه. یه نگاه هم میکنم میبینم بله اینجا دارن غذا خیر میکنم چون طبعا با این غذا ملایمت ذاتی داره خوشم میاد یا نه محبت پیدا میکنم این میگن خوب یعنی بهش وابسته میشم اما این محبت که ملایمت است بر اساس میل شهدت غذاست گاهی منافرت من تو کوچه در حالت عادی دارم رد میشم صدای زوزه گرگ صدای نعره یک انسان مست با یک جملات رکیک نگاه میکنم چون با ذات من ملایمت نداره منافرت داره بدم میاد سرمو برمیگردونم اینجا نسبت به او بغت پیدا می کنم اونجا نسبت به او حب پیدا می کنم. حالا در همین مثال قضا و پارچ که زدم یک کمی دقت کنید نزدیک بشم بنده در حالت عادی چشنم دیدم پارچ آب اینجاست به اندازه اتش محبت به آب پیدا می کنم یا نه چون می بینم با طبعه من ملایمت داره حالا اتش یک کمی بیشتر شد دو ساعت آب نخوردم دو ساعت تشنگی رو تحمل کردم حالا وقتی به آب رسیدم چی؟ با یک ولع بیشتری علاقه بیشتر نشون میدم یک صبح تا عصر تو بیابان کبیری دنبال آب دویدم یه دفه به یه چشمه آب میرسم اینجا محبت من نسبت به این آب چطوره شما میگید یه دفت نزار آب بخوره خود میکشه نزدیک نیشیم که گاهی علی خودشوی نشون میده میبره کنار یه دفعه خودشو نشون نمیده با اونی که تشله محبت علیه حالا سب کنیم تا بهش برسم امشب این شان پس منی که اینجا اینقدر تشنم بر اساس شدت نیاز داخلیم میگم که به آب دیدم دیگه سر از پانه نمیشنسم خودم رو میندازم تو این آب این بر مبنای ملایمت شهوانیه. حالا اگر به جای این شهوت غذا شهوت آب شهوت لباس شهوت پول اومد عقل و دل که شعائی و نوری از اله از اون دید نگاه کرد چی رو دوست می داره؟ وقتی دل به خدا داده شد چیزی را دوست می که خدا دوست می داره این الذین آمنو اشد دو حبم لله اومد خدا برای این دل علی آفرید. برای این دل علی آفریده حالا چطور؟ میگه نگاه کنید شما چرا این آب را دیدید محبت پیدا میکنید؟ ولی زوزه گرگ رو دیدید بدتون میاد چون با ذات شما این بعد حیوانی وجود شما مناسبت داره چرا شما علی رو میبینید خوشتون میاد اما از معاویه بدتون میاد میگه ببینید دل با عنوان تجلی خدا ارزش ها را ببیند دوست می‌دارد و شیفته ارزش می‌شود مظهر ارزش الهی در این عالم علی و آل علی است حالا ببینید هست یا نه نمونه‌هایی که تو این دنیا خدا برای ما قرار داده من در زندگی علی فقط چند تا میشمرم رد میشن یک ولادت علی رو خدا در کعبه قرار داد شروع می کن از اینجا کعبه چیه میگه اولین معبد الهی است اولین معبد الهی یعنی چی؟ یعنی خدا اراده کرده زمین پیدا بشه و در زمین انسان آفریده بشه و اولین انسان در دوره ما آدم عبل بشر تو این زمین قرار بده میگه اولین خشکی که در سطح زمین پیدا شد به اعتقاد ما همین چکه که هست از اینجا دهول عرض که شما جنبه های توجه دارید از اینجا زمین گسترده میشه این اولین نکته ای که در سطح آب روی این زمین خوش شد خدا به آدم عبول وشر میگه اینجا رو معبد بساز یعنی جایی که ذکر خدا مطرح بشه محاضی بیت المعمور عالم ملکوت. خب آدم بنا نهاد خراب شد ابراهیم خلیل بنا کرد من زمان پیغمبر اسلام پیغمبر از بت او رو شست داد ایسا را که به صورت استثنایی خدا اراده کرده در این آنب به دنیا بیاد مادرش حامل است مریم و اون وضع معجزات ها اومده کنار معبد نزدیکی مکان خودش میگه خدا درد زایمان رو بر من آسان کن ندا میاد اخرجی مریم خارج شو اینجا عبادتگاهه اینجا زایشگاه نیست مریم باید خارج بشه اما میخواد علی را به رخ بکشه فاطمه یه بنت اصد میاد کنار کعبه برترین معبد در این عالم خدا درد زایمان رو بر من آسان کن کعبه شکافته میشود میگه بیا خدا چجوری علی رو به ما کسی دل اگر داره میتونه اینجا ای علی رو عشق بهش نورده بیان جلو تا زینا چیزای کوچولوی این آلمشه اگه چشم عالم دیگه باشه یه جور دیگه میبینه علی در اینجا متولد میشه میخواد خدا حالا نسبت به این کعبه بگم خیلی سمین بالایه کعبه ای که پر از بطه برجسته ترین فرد عالم پیغمبر اسلام معمور شد وقتی که مکه رو فرد کرد این بطه ها رو از کعبه بریده میشکنه میرسه به جایی که بوتیون بالاست علی جان بیا کجا ها بزار روشونه من برو بالا در کنار برجسته ترین معبد کعبه روی شانه برجسته ترین مخلوق پیغمبر اسلام علی پامینه هد و بالا میرود قیل علی قل لعلی مدها مدحه یخمدو نارن موسده قلت لا عقدرو في مده امرین زلزو لبه زلزو لبه اله انعبده و نبی قال لنا لیلت المعراج لما سعده وزع الله به يده یدهو و احسل قد انقد برده و علیان وازان في محل وزع الله يده گفتن به پیغمبر گفتن به من مده علی بگو قیل علی قل علی مدها برای علی مد بگو گفت قادر نیستم برای علی مد کنم علی کفیش که ذلب صاحبان عقل و خرد در مورد او تا اونجا پیش رفتن که میگوین او خداست او را عبادت کنی ولی نبی لیل خلمه راجلم ما میگوید لیلت المعراج لما سعده در شب معراج که رفتم و رفتم و رفتم اون که دیگه هیچی راه نداره روح حریم الهی در دل من را پیدا کرد دست قدرت الهی یاد الله فوق ایدی هم نوازشی کرد بر شانه من آرامشی پیدا کردم الله و جعل الله يده خدا دستش رو یعنی این دست قدرت الهی فی زهری در پشت من و حصل قلب ان برده دلم آرامش پیدا کرد و علی وضع اقدام او و علی قرار داد پاهایش را فی محل وزع الله و یده در جایی که دست قدرت الهی او را نوازش کرده بود یعنی پیغمبر در کنار کعبه این شعار را این ندا را این فریاد را برای دلهایی که لجن نگرفته و میخواد لجنها رو کنار بزنه ارزش رو دوش ایجاد کنه منفعل میشه میگه بهترین معبد من بهترین بنده اما علی را خدا اونقدر دوست دارد میگه پاتو بزار رو شونه من برو بالا و رو بریست لذا همین پیغمبر در شرح صحیفه سجادیه سید علی خان این روایت رو در مقدمش نقل میکنه با مدرک بگم میگه پیغمبر میگه وقتی معراج می رفتم رسیدم به جایی که دیگه من بودم و خدا هیچ که در اونجا راه نداشت مقام قرب او کلام خدا که به گوش من رسید خوب گوش دادم دیدم تن صدا صدای علی ابن عوی طالبه گفتم خدایا این ندا تن صدا صدای علیه ندا اومد در شب معراج یا رسول الله نگاه به دل تو کردم دیدم تو بعد از من هیچ کسی رو اندازه علی دوست نداری خود من بعدت تو هیچ کس رو به اندازه علی دوست ندارم حالا وقتی بناس اراده خدا به صورت کلام در این عالم تجلی کنه باید به یه نوتی باشه دیدم این تون صدا صدایی که هم تو دوست میداری هم من دوست میدارم تون صدای علیه لذا در اونجا به تون صدای علی خدا با پیغمبر حرف می‌زند میخواد مقام علی رو در جامعه نشون بده اما این مظلومیت نمیخوام روزه بخونم هنوز منده میخوام بگم نمونه رو تا به روزه برسم اون وقت وای بر این بشر قدر ناشناس که امشب این علی رو شبانه مخی از کرده آه آه از دست سرافان گوهر ناشناس که این همه خرمهره را با دور برابر میکند این علی مال عرشه حالا خدا خواسته چند روزی تو فرش باشه تا ما فرشی ها رو ببره عرشی بکنه اما ما به جای اینکه دست به این عرشی بدیم از فرش برخیزیم با این عرشی چه کردیم که امشب باید مخفیانه دفنش کنن خب این علی تو کعبه متولد میشه در دامن پیغمبر بزرگ میشه پیغمبر میگه علی رو باید من بیارم پرورشش بدم. وقتی پیغمبر در قاره حرا قرار میگیره تنها کسی که محرم رازه این علیه پیغمبره باید با پیغمبر نزدیک بشه همین علی ابن که غذا براش ببره تو قاره حرا کنار پیغمبر باشه. اول کسی که به پیغمبر میگه آمن تو بکیار رسول الله این علی ابن در بعد از بعثت پیغمبر اولین روز دعوت علنی پیغمبر یومن انذار در یومن انذار وقتی پیغمبر معمور می شود که دینش را علنی کنه میگه گه مردم هر کس نخستین بار به من ایمان آورد او جانشین من او خلیفه من او وسیع من است لذا علی ابن عبی طالب پامیش آمن تو به رسول الله پیغمبر دست در دست علی میگذارد و میگوید یا علی انت اخی و خلیفتی و وسیگی وسیگ منطوعی خلیفه منطوعی برادر منطوعی شعب عبی طالب پیش میاد در در شعب عبی طالب نه تنها در لیلت المبید علی جای پیغمبر خوابید در شعب عبی طالب اکثر شبها علی جای پیغمبر میخوابید ابو طالب می اومد. پاسی از شب میگذشت پیغمبر از جای خودش جدا می کرد، جای دیگه می به و علی می تو جای پیغمبر بخواب که این بنده بر جسته خدا و مأمور الهی در خطر قرار نگیرد وقتی بنا می پیغمبر از مکه هجرت کند به مدینه بیاد لیلت المبید تنها و تنها کسی که خدا امضا کرده عیسارش را و من من یشری نفسه ابتقاء مرزات الله این علی ابن عبی طالبه که در بسر پیغمبر با کمال قدرت میخوابه که در روایات ما داره وقتی خدا پرمود میخوام آدم بیافرینم. سرشتگان گفتن نحنون و سب بهو به و ما هستیم داریم تصبیحت میگیم تقدیست میکنیم خدا فرمود اینی اعلم و مالا تعلمون چیزی من میدونم شما نمیدونید گذشت به گذشت تا لیلت المبید رسید علی جای پیغمبر خوابید پیغمبر حرکت کرد خدا جبرایل و ازرائیل و میکایل و اسرافی، چهار فرشته برجسته رو خون گفت شما هر کدوم عمرتون اینقدر طولانیه چقدر حاضرید از عمرتون بزنید به نفع دیگری؟ همه سراشون پایین انداختن هیچ اظهار نکرد فرمود به زمین نگاه کنید این بنده محبوب من علی ابن ابی طالب است که در جای پیغمبر خوابید و حاضر جان خودشو در طبق اخلاص بگذاره خدا به رخ فرشتگان این علی رو میکشه فاطمه زهرا ناموس است کیست که پیغمبر بوسه بر دستش میزنه و خدا در قرآن به پیغمبر بهعن عظمت میگوید فصل لربک وانهر انا اعتینا فصل لربک وانهر پیغمبر با دادن زهرا به تو جا داره بری خدا رو شکر کنی نماز شکر بخوانی و شطر قربانی کنی حالا این زهرای ناموس دهر وقتی پیغمبر هجرت کرد تو مدینه است هنوز زن علی نیست که محرم علی باشه تنها و تنها محرم عالم حسدی و ناموس ده این علیش که پیغمبر زهرا رو به علیش پرده میگه علیشان بعد از این که من به سوی مدینه رفتم تو زهرا را بیار مدینه به من ملحق کن علی سروزمون کار پیغمبر را انجام داد زهرا را سوار بر مرکب و مادرش فاطمه بنت اسد رو اما پیغمبر میخواد علی رو به رخ بکشه وقتی وارد مدینه شد تو محله قبا هر چه مردم مدینه گفتن یا رسول الله در انتظاری بیاری فرمود تا جانم نیاد تا روحم نیاد تا غلبم نیاد من وارد مدینه نمیشم همه منتظر من هر روز پیغمبر وقتی صبح بیدار می شد رو تو راه مکه می دو. جان من آمد یا نه یه روز گفتن یا رسول الله یه کاروان داره میاد پیغمبر سراسیم دوی به استقبال علی و زهرا اینها رو در آغوش گرفت و نوازش کرد فرمود حالا وارد مدینه وارد مدینه شدند وارد مدینه شدن مسجد نبی رو برپا کردن بناس دور مسجد و نبی که به سمت مسجد درشون باز شده خدا دستور داد همه رو ببندید همه رو بستن الا باب علی یعنی علی مسجدیش علی الهییش پیغمبر اینجام علی رو داره درو مردم میکشه عقد اخوت دستور داده شد ببندید پیغمبر میخواد برادر انتخاب کنه مهاجر و انصار دست به دست هم بدید معمولا کسی که در این عالم برای خودش برادر انتخاب میکنه شریک انتخاب میکنه هم مباحثه انتخاب میکنه یه سنخیت باید بینش باشه پیغمبر میخواد برادر انتخاب کنه میگه یا علی انت اخی تو برادر منی با این علی عقد اخوت میبنده زهرایی که کائنات به او مینازن میخواد همسر براش انتخاب بشه از هر سو زرمندا، زورمندا، قدرتمندا میان به خواستگاری، پیغمبر میگه اجازه ازدواج زهرا دست خداست، باید خدا اجازه بده، ولی وقتی علی میاد، پیغمبر میگه فرشتگان آسمان به وجد آمدن و همه منتظر اجرای خطبه عقد این علی و زهرا هستند تا به رخ مردم بکشه این علی کیه با پیغمبر در شعون مختلف میخواد به رخ بکشه برای مردم جنگ احوده جایی که پیغمبر تنهای تنها شد از هر طرف دشمنان هجوم آوردن دارن شمشیر میدنن جمعیت فراری شده نصیبه یک زن دید پیغمبر تنها شمشیر گرفت، اومد از پیغمبر حمایت کنه به نقل منابه جبرائیل بین آسمان و زمین پیغمبر را صدا زد ناد علیم مظهر الاجائب تجدها ها اونن لکه سن نوائب شست و چهار بار در جنگ احر پیغمبر گفت یا علی علی میومد کنار پیغمبر هشتاد و پنج ضربه بر علی خورد علی می افتاد پایین می گفت یا رسول الله پیغمبر وقتی در فشار قرار می گرفت می گفت یا علی شست و چهار بار پیغمبر گفت یا علی هشتاد و پنج بار علی گفت یا رسول الله تو پرانتز یه چیزی بگم ابن مسعود می نویست اومد پیگمبر گفت یا رسول الله میخوام بهترین دعا را به من یاد بدی که خدا را به کی قسم بدم و چگونه دعا کنم که بهترین محبوب خدا باشه خدا را به او قسم بدم پیگمبر پرمود ابن مسعود این پردر رو بزن کنار میگه پردر رو زدم کنار دیدم علی به سجده افتاده میگه خدا به حق بهترین بنده تو برادرم رسول خدا امت ما را نجات بده صبر کردم سجده علی تمام شد به علی گفتم علی جان پیغمبر منو رو به حواله داد دعا به من یاد بده پرمو ترده رو بزن کنار ترده رو زدم کنار دیدم پیغمبر به سجده افتاده میگه خدا به حق بهترین بندد علی امت ما را نجاتش بده یعنی علی و پیغمبر آیه مباحل ناصر شد نفس پیغمبر معرفی شده جنگ خندقه دش میگن جنگ احزاب یعنی همه گروه ها همه ی حضب ها دست به دست هم دادن یک جا فاتحه اسلام رو بخانن قوی ترینش امرت نعبدووده وقتی از خندق میپره میاد این ور حل من مبارز میگه اون قدر سحنه بر پیغمبر مشکل شده اونایی که مدینه رفتن خندق رو دیدن اون مسجد بالا مسجد پر پیغمبر رفت بالای تپه دست به آسمان بلند کرد گفت الهی بر ال ایمان کله ما کل تمام ایمان امروز با تمام شرف با همدیگه روبرو شده خدا اگه میخوای روی زمین عبادت بشی یاری کن تا این دعا پیغمبر کرد علی سرش آورد بالا یا رسول الله من آمادم یعنی خدا علی را فرستاد علی آمد امر ابن رو به زمین میزنه پیغمبر میگوید ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین لا فتا الا علی لا الله الا ذوالفقار این علی در روز قدیر خم روی دست پیغمبر قرار میگیرد من کنتم مولا فهذا علی مولا اگر کسی دل داشته باشد من تشنه ابر دوست دارم من دلی که میخواد عاشق بشه کدام معشوق از علی زیباتر کدام محبوب کدام محبوب از علی ارزنده تر جوان علی داری عشق به دختر عشق به زن عشق به میز عشق به پول عشق به دنیا عشق به ریاست مال کسی که علی نمی شناسد علی کسی که دل را میگیرد؟ آن دل که علی دارد به هیچ دل نمیبندد میگه علی دست تو بر سرم بود مهر تو در دلم الی دل به کسی هم چون به تو مایلم الی هسته من ز تو دل شده مسته مست تو در همه جا به دست تو حل شده مشکلم الی حاصل عاشقی بود دم زدن است محبتت من ز تو دم زدم که شد عشق تو حاصلم علی گم زدم عنایتی گم شدم حمایتی خضر رهه هدایتی مرشد کاملم علی گفتن یا علی مدد هست عطای لایعد در دو جهان به حق بوعد عشق تو حاصلم علی من که گدایی درت بر دو جهان نمیدهم سید تو از کرمه تو میرتد دولت مقبلم علی حامی عاشقان توی هادی گمرهان توی داده نشان طریق حق از ره باطلم علی اونی که معنای عشق علی رو فهمید دیگه سر از پانه میشنسه از این ور دل و علی میده میگه ما علی داریم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم ما هم به علی نازیم این دل علی داره غیر علی نمیشناسه اما این دل خوزنم داره چگونه میگه وقتی امشب همین موقع هاست چون داره دو سلسه از شب گذشت علی فرمود بچه ها آماده باشید حسن جانم حاضر حسینم زینبم کلسومم منو کفن کنید تو تابود بگذارید عقب تابودو بگیرید جلو تابودو آزاد بگذارید خودش حرکت میکنه از کوفه ببرید بیرون ای وای، یه جایی که از زمان آدم برام آماده شده اونجا شبانه دفن کنید یواشکی برگردید کسی هم متوجه نش. قبر منم مخفی کنی همینجور امیر داشت رسیت هاشو میکرد یه وقتی یه جوون سیزده ساله این صورتش رو به کف پای علی کسبنده همه جا عدب رعایت میکنه همه جا حریم بچه های فاطمه زهرا رو داره بالای بستر علی نمیاد مال بچه های زهراست رفته پایین پا این صورتش رو به کف پای علی چسبنده یه وقت علی چشم رو باز کرد هم توی بابا بیا بالا وااس آورد بالا یا بهسترش حسین بیا حسین و سالش عباس سیزده سالش. آقا سفارش کوچیکترا رو به بزرگ را نمیکنن ولی دست حسینو رو گذاشت تو دست عباس عب هم حسین رو تنها نذاید یعنی <تصفيق> علی میخواد بگه عب این مردم با زهرا کینه نباره این مردم با بچه های زهرا کینه نباره ای وای علی که تمام وجودش ارزشش، آی مسلمون ها امشب علی رو سه چهار نفر تشکی کردن امشب شب علی رو چهار نفر مخفیانه به خاک سپردن این شب سحر با مدینه صحبت میکردم تلفنی به من گفتن خوشا به حال تو که بلند میتونی بگی یا علی <تصفيق> گفتن نفتم که نار قرآن رو به سر گرفت یاماش میگفت به لایب علیه آیه خدا مظلومیت علیه تا